سون دست خدا فشر دستم را نظاره نمی شکستم را در دشمن آنچه هست بر من نیز خزلا و نقم و شکست بر من نیز من دست خدا در آسکین دارم چون ساقه خشم را دارم بر سینه عبر تابی نیکوبم ساو رعد را برا شوبم ای در حق شناف آگا هم او لحظه مرگ با تو همراه امروز منم امروز تو چنگ در چنگر او روشن دلت تنگر امروز من و تو هر دو دلتنگیم بر شانه خاک او ثمن رنگیم ای مرا بجیر در مشت دل به ز ضربه ترنگش بمزن زن چه در سرور آیم چه زخمه طوف به شوق و شوب را آیم مزرا بم زن که ناله ها دارم ازشت فقان لال دارم امروز چراف عشق پر کیشار حکمان چه تو می کنی